حال در سوره قارعه تخویف می برای کسانی که ظلم می کنن. تخویف اخروی برای ظالمان بیان می شه القارعتم القارعه قبلا گفتیم قارعه صدای در هم کوبنده را می گند. نامی از نامهای قیامت هست چرا به قیامت می القارعه چون وقتی که آغاز میشه با صدای محیبی با صدای کی گویا یک انفجار بسیار بزرگی رخ میده چنان انفجاری که زمین و کوها به هم کوبیده میشند آسمان تک کپاره میشه ستاره ها و خورشید بینور میشند میوفتن تمام حوادث و اتفاقاتی که شما در سوره شمس و انفطار خواندید، همه اتفاق میوفته بعد از این القارعه اصل قرع میگوین در شب در زدن را روز کسی در بزنه در بخونه شما صدا زیاد نمیاد ولی شب کسی آیسته هم در بزنه هم صدا زیاد میاد می آدم اصابانی میشه که کیه این, این وقت شب این بلند در میزنه لذا اون صدا صدای محیبی هست صدای خطرناکی هست الله تعالی به صورت استفام تحویل در آمده یعنی قاری عرب تشریح فرماید با استفام تحویل دوبار سوال میشه مل قاریه هاول ایجاد میکنه میدونی قاریه چیه مل قاری قاریه چیه و ما ادراک مل قاری خبر داری قاریه چیه بعدن الله تعالی تشریم می میفرمايت قاریه ا کردم این استفهام تحویل یکی هدف ایجاد حول هست در قلب و یکی دیگر اینه که تشویق بشه انسان این خودش یکی از فنون بیان هست یکی از صورت های زیبای بیان اینه که اولا شما در ذهن مخاطب تشویق ایجاد کنید گاهی آدم میشنوه یک سخنران ماهر وقتی که سخنرانی میکنه یک مطلبی میخواد بگه 20 دقیقه قبل اون مقدم چینی میکنه میگه من امروز یک مطلبی میگم که این مطلب خیلی مهم است. این مطلب در دنیا هم برای ما مفید است آخرت ما را هم دیگر گون می کند. ه اینقدر درباره اون مطلب تشویق میکنه تشویق میکنه ما عجله میکنیم زودتر بگو گوشهایمون را خوب باز میکنیم. اون وقت هر مطلبی که بگه انسان فراموشش نمیکنه. بعد از انتظار بعد از اینکه انسان چقدر برای اون انتظار؟ لحظه شماری میکند که کی این مطلب گفته میشه لذا این یکی از زیباي های کلام هست. الله تعالی قبلا تشویق میکند قارعه میدونی قاری چیه خبرداری قاری چیه خب گوشه مباز میشه چیه میخوام بدونم یوم ما یکون ناسوکال فراش المبثوث قارعه آن است که روزی که مردم میشوند مثل پروانه پراکنده پروانه دیدید نه پروانه خیلی حشره ای هست ضعیفه هر جا بالش برخورد بکنه میشکنه زود از بین میره هیچ چیز نداره خیلی نحیف و لاغر و ضعیفه کوچک ترین آسیبی بهش برسه بالش میشکنه میفته لذا پروانه های مبثوطی که پراکنده هستند چون پرا، پروانه ها بیشتر در بهار هستند. اینا وقتی که زیاد میشند برخورد میکنند به این شاخ و به اون دیوار و به اون تیر برق هر جا هر جا افتادند. انسان ها وقتی که از قلب از قبر بلند میشوند قبلا کل جراد هم خواندیم جراد وجهشه بهش با پروانه هم همینه ملاق هم همین طوره؟ وقتی که به اینجا و اونجا برخورد میکنم میوفتند لذا انسان ها از قبر بلند شده حال نداره اونجا افتاده اون اونجا افتاده الله میفرماید یوم یکون الناس كالفراش المبثوث تشبیه به فراش به پروانه مبسوس، یعنی پراکنده و هر جا هر جا افتاده در چیه؟ در ضعف و کسرت و بیتابی هم ضعیفه هم زیادند، هم بیتاب هستند پر، پروانه اونجا هم بیتابی میکنه بال شکسته، هی بال میزنه، هی دست و پا میزنه بلند میشه میوفته، میغلطه این طرف، این طرف میغلطه انسان همین طور بیتابه و انسان بلا تکلیف انسان پریشانه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش و می شوند مثل پشم, پشم حلاجی شده پشم حلاجی که حلاجی بشه با اون چوب زده بشه این پشم هیچ وزنی نداره هی میره بالا میت پاین می افته اللہ می فرماید در اون روز خوشا به حال اون انسانی که نام اعمالش سنگینه وزن اعمالش سنگین چون اعمال خوب داره فاما من ثقلت موازينه اما اون انسانی که سنگین بشه ترازوی عملش فهو في عيشه الرضيا اون انسان در حیاتی هست در زندگی هست که اون انسان راضیه اون انسان در زندگی پسندیده هست در زندگی که خوشه با اون زندگی خودش بعضی از انسان ها ماهای زندگی داریم که خوشحالیم بعضی ها نه همیشه رنجورن نارهتن اون آغا خوشه و اما من خفت موازینه تخوی فی اقربی اما اون انسانی که سبک باشد وزن اعمالش ف امه پس جایش حاویه هست هاویه چیه؟ و ما ادراک ما هیچ استفاده میدونی که هاییه چیه ما هیه اون اونچیه نارون حامیا این آتش داغ و آتش سوزانیس حاویه در واقع تباقی از جهنم هست که اونجا آتشش از همه جا سوزانده سوزانده تر هست از همه جا داغتر و خطرناک تر هست. الله ما رومی میفرماید پس شود جای دلش در هاویه این کسی که مجرم هست پس شود جای دلش در هاویه هیچ میدانی چی باشد ماهیا آتش سوزنده نقش غیر را که بسوزد پر طیر و سیر را چنان آتش مهیبی است که هر پرنده از اونجا پرواز بکنه، سیر بکنه، دور چند کیلومتری اون را می سوزاند یعنی حرارتش تا دور انسان را دربر می گیرد آتش سوزنده و نقش غیر را که بسوزد پر طیر و سیر را لذا ما ادراک نار نارون حامیه